بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد و لا حقود و لا قلقت الا بالله العلی العظیم همینطور که برادر عزیز ما یادآور شدن عنوان این صحبت ها سیر من الخلق الالحق بود یعنی از خلق به سوی خدا متوجه شدن اصلا نظام عالم آدم ببینه متوجه خدای تعالی بشه بعد سیر دومی سیر من الحق الالحق بود از خدا به سوی خدا شجوری از خدا به سوی خدا یعنی راجع به سپات خدا و صحبت میکنی و همش الهیات به معنی اخست به اصطلاح. بنابراین از خدا به سوی خدا راجع به سپات خدا سیر ثبومی از سپرو من الحق الالخلق دو مرتفع سرازیل میشیم پایین یه قوس در واقع شد میکنیم از خدا به سوی خلق اینجا چه موضوعی مطرح میشه؟ افعال خدا اونجا اون اول ذات خدا اثبات شد بعد سپاج خدا بعد حالا افعال خدا که خلق و روزی دادن و نظام ایجاد کردن و حیات ایجاد کردن و در این بحث داریم رسیده بودیم به همین سیر من الحق الی الخالق همین سومی اینجا یه موضوعی مطرح شده بود به اون که تمام این موجودات از نظر ما در این سیر فیض از خدا میگیرن بعد یه اشکالی وسطش مطرح کرده بودیم که اگه اون آد زم داره به حول قوه خدا دزدی میکنه اونم که نماز میخونه به حول الله و قوته اقامه و اقود پس چه فرقه بینشون یه مثال زدم مثال این بود که گفتم ببینین تمام چراخهای شهر از کارخانه برق دارن انرژی میگیرن اینکسیسته میگیرن درسته؟ منطقه یکی کنترل داره حساب پس میده و آبونمان میده پس کن یکی یه سیم قلابی اندخشه رو سیم اصلی داره از اون که سابقه هم این کارها رو میکردن قبل اینکه به همه کنترل بدن یه دستی داده بودن یه دستهی تقلم میکرد خب هر دوی اینا دارن از اون از کنم که کارخانه اصلی انرژی میگیرن انرژی روشنائی و این حرف ها میگیرن ولی یکی رو قواعد میگیره حقشونو رو پرداخت میکنه یکی سو استفاده میکنه اینجا هم همینطوره اون دوزم که میره بالا از دیوار مردم به حول و قوه خدا میره این حول و قوه رو خدا بشتاده از اون حول و قوه بد استفاده میکنه اون یکی هم که حول و قوه که خدا بشتاده در خدمت به مردم به کار برده بس فنابراین این که آدم بگه تمام عالم چه کارهای باطل کنن چه حق بکنن, همه. نیرو و انرژی رو از او دارن میگیرن که توحید افعالی باشه هیچ موجودی مستقل نیست یه اتم مستقل نیست در حرکت خودش همه پیز از خداوند میگیرن این از لوازم بحث الهیاته که کسی معتقده به خدا تعالی به معنی صحیح باشه بعد به این عقیده داشته باشه حالا تا اینجا این تکرار بحث گذشته بود در توحید افعالی اون قبلی رو ببین توحید صفات قبل از اون نگفتیم توحید ذات. حالا در این توحید افعالی از کنم که اشعری های اهل سنت که خیلی گروه زیادی هستند، طرفداران طرفتاران عباد حسن اشعری که این تقریبا حدود 100 سال بعد از فیغمبر سر خوردهی بوده اونا میگن که لا معصر پل وجود الا الله ما اینو میگیم ما میگیم لا حول ولا ولی منظورشون از لا از بالوجود الا الله علیت و نفی میکنن میگن این کار که شما میگه علت اون موضوعه این درست نیست عدل رو باید همه رو نفی بکنیم این که میبینید دو تا کار پشت سر هم واقع میشه نه اینکه اینا علت و معلولن علت حقیقی فقط خداست اینا رو عادت خداوند جریان اینطوری برقرار کرده که این دو تا پشت سر هم باشن مثال براتون بزنم شب و روز پشت سر همه دو تو هم این هم آمده اختلاف لیل و نهار اختلاف دو معنی داره یکی یه روز روشن شب تاریکه یکی در خلف یک دیگر در آمدن پشت یکدیگر در آمدن منظور از اختلاف لیل و نهار یعنی پشت سر هم در آمدند به حال شما ببینید شب و روز پشت سر هم در میاد اما میتونیم بگی شب تاریکی رو ایج... روشتنهایی رو ایجاد میکنه علت ایجاد روشنایی تاریکی نه روز تاریکی رو خلق میکنه نه اینا پشت سر هم هستن میگه در عالم یه سلسل اموری هستن پشت سر هم هم ماها خیال میکنیم یکی علت دیگریست علت حقیقی تنها خداست اشاعر این نظر رو دارن اتباقا از فلاسفه اروپا هیوم که یک از کنم که سوپ انگلیسی است اونم همین عقیده رو داشته علیت رو انکار میکرده و میگفته این توالی حوادثه پشت سر همه شما تعالی توی بعضی بعضیاتون از اهل سنت بودین تو اشعری ها بودین ولی تو معتزلی ها کمند یه دورهی خیلی زیاد بودن اشعری عقیده شن همینه نگاه کنین تو کتاب های اشعری ها مثل فخر رازی مثل کتاب دیگه همه همین ولی قرآن کریم اذهیتو قبول داره انزلنا من السماء ماءا فاخرج بهيماث وثمرات لكم. باران از آسمان میفرسه به سبب اون آب که حیات پیدا میشه در به اصطلاح گیاهان رو رشد میکنن و تغذیه میکنن و خیلی جاها مساله علت و معلول رو و ریاه بادها رو میفرسه فتاسی رو سحابن بر می انگیزن عبرهای رو فیبسته توف سما و گسترش میده این ابر رو در آسمان که اگه باران بریزه همه جا بریزه باز بر نگرد تو دریا مثلا قرآن پر از علیت و معلولیته شما هزار بار آزمایش کردید که ریدو مندازید در خونه رو باز میکنید این میشه علت اون قفلی که بسته بوده باز میشه میشه معلول حالا میتونین بگیم نه این علت و معلول نیست خدا قرار داده تا کلید بذاریم او باز بشه نه این علت و معلوله دو بامم خدا الش معلولم خدا قرار داده ما نباید به خاطر اینکه خدا رو همه کارایی آدم میدونیم علت و معلولی هم که خودش گذاشته این کار کنیم از کنم که ازدواج باعث میشه که بچه ایجاد بشه. آدم میگه نه این دو تا کار هیچ ربطی به هم نداره. خدا این قرار گذاشته که اگه کسی ازدواج کنه بچه ایجاد بشه خیلی هم ازواج میکنن بچه ایجاد نمیشه بنابراین اسپرم هست، اگول هست، قوانینی هست، علت و معلولی هست این عقیده ارز کنم که اشائره اهل سنت تو کتاب پره علت و معلول این کار میکنن میگن لا الا فالوجود، علت حقیقی در عالم که تاثیر داره فقط خداست ما میگیم نه آقا چون خدا قرار داده که اگه من استرکنی بخورم مهدم پار پوره بشه این تاثیر همون استرکنی رو مهدم من تو این علت محلول خدا برقرار کرده این قانون خدا گذاشته نه اینکه این, این هیچ تأثیری نداره این استرکنی فقط بخی این من میخورم جدا از این خدا دستور میده مهدم من پاره پوره بشه نه اینطور نیست. نیست بنابراین در توحید افعالی که میگیم همه دارن از خدا انرژی و نیرو میگیرن لا حقوره براقاباتا الا بالله علت و معلولم داخل خود او علتها و معلولها رو قرار گذاشته پس بنابراین توحید افعالی مخالف با از کنم که علت و معلول سبب و مسبب نیست بعد صوفیه به یه عقیده و به اون عقیده یه است که جبر ارفانی جبر ارفانی میگه آدم تا وقتی که سالک طریق نشده تو راه معرفت وارد نشده خب فکر میکنه که این شی این اثر گذاشته اون شی اون اثر گذاشته اون شی. ولی وقتی که سالک میره به اون درجات بالا میفهمه که یعنی ارفانت ترقی میکنه در او میفهمه که اصلا همه کار خداست هیچی هیچ کار هست خب این مجازه به کارایی هم انسان داره میکنه این همه قرآن به ما و کنتم تعمدون به ما و کنتم تصنعون به خاطر اعمالی که شما کردید به خاطر کارایی که انساختید از کنم به ما و کسابت عیدی در اثر سر کار دست شماست این کار نتیجه اعمال شما لیسل انسان الا ما اینا یه فکرای خلاف به اصطلاح عرف خلاف اونا خواستن خیلی خدای تعالی رو در همه کار دخالت بدن و خیلی قضیه شروع کردن علت و رو جمع کردن بله عارف میرسه به جایی که می‌بینه که همه چیز خداست خب به همین جهت شروع کردن رو مبنای تفسیرهای غلطی کردن میگه ابن عربی بزرگی است. اصلش مال آندولوس بوده آندولوسی اسپانیاییه بعد این مسلمان شده و حالا شاید پدرانش مسلمان شدن تو آدم اسلام وارد شده کتاب های متعدد نوشته فتوحات مکیه فسوسال حکم ارز <تصفح> کنم که در فسوسال حکمش که من منزل دارم اونجا نوشته که گفتم بارهای اینو نوشته که حضرت موسی که برگشت دید که قومش دارن گوساله پرستی میکنن چرا عصبانی شد سر ریشه برادرش حارون که پیام برم بود هارون گرفت و توبیخ کرد او رو برای این که حارون مخالفت کرده بود با بود پرستی با گوساله پرستی نه اینکه کوتاه کوتا بود مخالفت نکرده بود ما ها میگیم حضرت هارون مخالفت کرد نزی بود بکنه منو خودش به موسیو ولی وقتی دید اثر نداره گفت خب صبر میکنم موسی نفوذ کلمش بیشتره اون بیاد درست بکنه ولی اون تفسیرشو اینطوری میکنه میگه وقتی که بله هارون مخالفت کرده بود پس موسی که آمد به هارون گفت چرا مخالفت کردی گوثال پرستیم هم خدا پرستیه چرا به اونم مخالفتی بعد این جمله رو میگه اینالارفه یرال حق قفل بل بلی یراه اینک خلشه عارف حق رو خدا رو در همه اشیاء میبینه بلکه خدا رو عین همه اشیاء میبینه یعنی در و دیوار و زمین و آسمان و خودم و آتش و و همه خدا نوز بالله و همه همین جهت در یکی از جملهات تحمیدیش که حمد میخواد بکنه و تسبیح بکنه میگه سبحان اللذی خلق الاشیاء و هو و ها منذر از خدای که اشیاء را آفریده به خودش عین اشیاء خب این از نظر قرآنی و عقلی قلطه خالق غیر از مخلوقه فائل غیر از مفعوله سانع غیر از مصنوعه این بدیهی این امر اینا میخوان توحید افعالی رو از خانم که گسترش بدن و ارز کنم که خدا رو میگن در همه کار خدا داره میکنه بعد از اون طرف پس بشر کاری نیست پس عدل الهی و بهشت و جهنم یعنی چی همه رو داره خودش انجام میده چه دزدی باشه نماز بردا چرخانم که امانت داری باشه خودش داره اینا رو میکنه پس جهنم و بهشت برای چیه مسئولیت انسان برای چیه یعنی اینا افکار غیر طبیعی است که در ایده پیدا شده مثل کسانی که ائمه علیهم السلام رو دوست دارن، قلب زیاده از حد میکنن. بعد هرچی بهشون میگیم، نه، من محبته من یادم میاد که در یک جلسه بود، منزل مرحوم مهندس بازرگان، که ایشون شوهر عمه من بود، بچه‌ها پسرام و دخترام هم من هستن ایشون از زندان آزاد کرده بودن بعد از انقلاب بود، ما رفتیم دیدنشون، مثلا سلام سلامتی بگیم، تبریک بگیم این حرفا، یا خوندی هم اومده بود. اون آخونده یک کتابی رد آقای تبا طبع ثابت تفسیر نوشته بود یه جزوه ال... ال میزان المیزان رو گفته بود هول ال... یعنی در پیرامون تفسیر المیزان و یه چیزای خرافی گفته بود چرا اینطوری نگفتیم چرا اونطوری نگفته بودی که حق با اون نبود بی خودی از هم این کتاب رو نوشته بود بعد ما همطور که نشسته بودیم ما ادجه آمده بودن از اشخاص مختلف دور آی بازرگان بودن ارز کنم که این آخونده به صدا در مد. این آخونده آمده بود آقای بازرگان ما خیلی از شما تحسین میکنیم تقدیر میکنیم ولی شما به علامه مجلسی چرا در سخنرانی ها حمله کرده بوده یه باره حالا مردی چند سال زندان بوده استاد دانشگاه پیر آمده مردم بخواند تبریک بهش بگم حالا آقا آمده ایراد ایرادم چرا به علامه مجلسی ایراد کردی بعد دیدم که بازرگانم یه قدید تعمل کرد چی جواب بده چی کار بکنی اینا من از اونجا گفتم که حالا اسم اون آخونده نمیارم چون فوت شدیم بختم آقای محترم شما همون نیستی که رد آقای تبا طبع تبایی یک جزوهی نوشتی به اسم خول المیزان من عضواتم خوندم گفت بله بله من نوشتم گفتم که مجلسی که ازش دفاع میکنی تو بحارالانوار گفته قرآن تحریف شده تبایی طبع هرچه هست دیگه این هر کنه مفسر قرآنه ممکنه در بعضی از آیات باش اختلاف داشته باشی ولی دیگه نمیگه این قرآن اعتباره مفسر قرآنه شما داری از مجلسی دفاع میکنی که میگه قرآن دست خورد قابل اعتبار نیست؟ به از کنم که اون وقت رد تبا طبع تبایی نوشتی به من چی جواب داد؟ گفت ملدسی که گفت قرآن تحریب شده رو محبت به ائمه گفته چون روایاتی از ائمه آمده که قرآن دست خورده اینم از دوستی عیمه نتونست اینو فراموش بکنه من گفتم پس حق با علی اللهی اونام که گفتن علی خداست رو دوستی گفتن رو دشمنی کنه گفتن پس چرا شما آخونده میگین اونا کافنن و زندیغن و مشرکن و هرکی بگیه علی خداست و اینا بزرگانشون همه اینطور میگن دیگه این دیگه ساکت شد یه آخونده دیگه اونجا آخوند بود گفت بله آقا این بحثار بعد یه جلسه دیگه باشه و سوری باشه و ما هم بیاییم ما سوری بخوریم و تمامش بکنیم خدا بیام روزد چون همشون شون رفتن از د مرحومه بازرگانم که مرحوم شد منظور من اینه اینا روی شدت علاقه چیدور در مورد ائمه علیه السلام قلوب میکنند صوفیانم اشعری ها و صوفی ها وحدت بودودی ها میخوان خدا رو خیلی نزدیک نشون بدن متحده با خلق میدنن یا معتقدن حلول کرده در خلق بابا حلول مال اجسام که جسمی در جسم دیگه داخل میشه خدای تعالی جسم نیست که وارد بدن کسی بشه یا اتحاد حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است بنابر این این اشکال بر اینا ما میگیم لا حول ولا قوه الا بالله همسر که تو قرآن تو سوره کهف ماشاالله تو سوره که ماشاالله لا قوه الا بالله در این حال علت و محلول اثر و معصر هستن از کم، اسید سورفوری که هم رو بریزیم مثلا روی بریزیم ترکیب میشه اثر میذاره نتیجه میده سورفور ها مثلا نتیجه اینها هستن از که به تمام این قوانینم معتقدیم و قرآن کریم ما رو هدایت کرده گفته این ابری که میبینی حرکت میکنه بعده که او حرکت میده نه خدا. بعد از کنم که وارد منطقه سرتر میشه تبدیل به مایع میشه دانه میشه میزنه چون قوانین الهی است چون اینا رو منکر بچیم اینا مخالفت با توهید افعالی نداره خب اینا میگن که تمام فعل الله بنابراین عبد جایی در اینها نداره فعل الفعل فعل الله والعبد و معطلان آب معتد اینجا همه کارا کار خداست خب ما میگیم نه آقا جون ببینیم مثال مثال یه کشتی است یه کشتی ما توش نشستیم داره ما رو میبره طرف ساحلی جایی کشتی ما رو میبره اما خود ما داخل کشتی بریم این طرف بی اون طرف این دیگه پل کشتی نیست این پل منه چون اگه این بود هر کم که نشسته تو کشتی بعد بپر این بر بپر اون بر. کشتی دو حرکت داره یک حرکتی که من چه بخواهم چه نخواهم داره منو میبره این کشتی زمان و مکان و کرهی که توی زندگی میکنیم و متولد شدم زمان داره میگذره به طرف مرگ میرم این کشتی الاهیست او تقدیر کرده داخل در این کشتی هم یه حرکتی دیگه خود ما میکنیم از اینجا کشتی میرم رو صحنه از اونجا بیریم تو اتاق از اونجا بیریم اون طرف گاهی برخلاف مسیر کشتی کشتی داره اینطوری حرکت میکنه به طرف جنوب ما داخل کشتی به طرف شمال مثلا قدم برمیدهیم کار انسان اینطوریه در این اینکه که از فعل الهی بر ما محیط از فعل الهی بر ما و ما مهاتیم در این حال خود ما هم یه خیاراتی داریم ارادهی که خدا خلق کرده در ما اگه قرار بشه که در اعمال ما هیچ اصل نداشته باشه خدا به پوچی رفت کارش بی خودی این اراده رو ایجاد کرده مثل اینکه که خداوند متعال مثلا هوا رو ایجاد نکنه تون با ارتعاش هوا صدا به گوش میرسه اگه جایی که هوا نباشه از کم احتراق نیست اصلا شما همین کبریتی که اینجا میزنی آتش میگیره چون اکسیژن هست بری توی این محیطی که تخلیه از هوا شده هرچی بزنی آتش نمیگیره چون میسوزه. اینا رو خود خداوند قرار گذاشته بنابراین خدا وقتی که با ما اراده داده یعنی این اراده تو در عملت مؤثره، این اراده علت عملت تو معلوله پس تو هم از کنم که مسئولیت داری چرا اراده به عمل بد کردی چرا اراده به عمل خوب کردی پاداش داری مثلا اینجا اینا خیلی بعد صوفیه برای این که حرف خودشون اثبات بکنن به این آیه تسبیدن ما رمیت از رمیت ولکن الله رما تو نیفت کندی اون که افت خدا اونو افت کند درسته؟ میگن بابا ظاهرا به نظر هم که تو داری این کار میکنی تو دزدی میکنی نوز بالله. خدا این رو همه رو وصفرم در درسته که این آیه اصلا ربطی به این نداری این آیه در سوره انفال در سیاق جنگ بدر موضوعش جنگ بدره در اون جنگ همه مفسران نوشتند دشمن که میخواست حمله بکنه پیامبر اکرم دولا شدند یه خاک برداشتن به طرف اینا اینطوری پاشیدن فرمودن شاحت الوجوه این چهرها ها دشمن زشت باد در همین موقع یک طوفانی برخواست به طرف اونا که اونا رو از باشون اینطوری افتادن مسلمین هم عمله کردن مسلمین در جریان مخالف اون بودن بعد خدا میگه ما رمیت از رمیت تو نیافکندی اون طوفان رو تو فقط یه مش از رمیت زمانی که تو یعنی مفعولهای این کلمه هست شده ما رمیت تو نیافکندی یعنی اون طوفان رو از رمیت زمانی که افکندی یعنی اون مشخاک رو اون مشخاک رو تو ریختی اون توفان رو تو ایجاد نکردی ما به وسیله قوانین منحال حدشی بود باد و منحال حدشی به عمر خدا سرشت علل از کنم که اون رو ما ایجاد کردیم اینا آمدن اون آیه رو دلیل بر این گرفتن که عمل عبد اصلا مطرح نیست فقط عمل عمل اللهه و توحید افعالی رو به این معنی گرفتن اصلاح که داستان همون کشتی است که من گفتم کشتی داره برای خودش حرکت میکنه مارم میبره چه بخوایم چه نخواهیم اما در این حال اون حرکت ما هم حرکت دومه که در داخل کشتی انجام میشه پس این آیه هم یه کرامت را از توی خلاه تالا داره هیچ ربطی به این حرف سوپیه نداره از کنم که اون وقت این برادرای اشعری ما رفتن روی یاکن نعبد و یاکن نستعین در علم بلاغت و در علم نهب گفتن وقتی که مفعولون به جلوتر از فعل و قرار بگیره افاده حصر میکنه یعنی, یعنی خلاوند نفرموده که بگی نعبدو که نعبد که فعل و فعله. یعنی ما عبادت میکنیم ترا فعل و فعل و مفعول ما خدا نگفته بگید نبود و که گفته یاک نعبود اون کاف نبود و که رو به صورت زمیر منتصل قبل از فعل ورده یاک نعبود این کار برای چیه؟ این کار برای اینه که هر چیزی که به طور طبیعی باید بعد از کلمه بیاد اگه قبل از او بیاد افبره افاده حسنه بنابراین ایاکه نعبود و یعنی لا نعبود و الا ایاک بر نبود که فرقش اینه که یه خداحافظ گفت و گید نبود و نستاین و که، اون این بود که ما طوری بازدات میکنیم و از تو کمک میخوایم، اما قید طوری بازدات نمیکنیم و از قید تو کمک نمیخوایم، از سوش در نمیامد. ولی وقتی که گفته ایا کن نبود و ایا کن نستاین، یعنی الله نبود، یاک و الله نستاین، الله بک، ما بازدات نمیکنیم مگر تو را. و کمک نمیخواهیم مگر از تو این افعاله هسته خوب حالا اول مرکب دعواز عبادت نمی کنیم جز تو را خب روشنه یعنی ما تواف نمی کنیم سجده نمی کنیم زبه نمی کنیم قسم نمی خوریم نظر نمی کنیم نمی این کاران که عبادت دیگه اینا رو فقط برای تو می کنیم کل عبادات رو برای تو می کنیم درسته شریکی نیستیم اشکال نیست ولی جز از تو کمک نمیخواهیم خب ما داریم از هم دیگم کمک میگیریم آقا بیا سریم میزه بگیر بکشیم. اون طرف معنیش میشه؟ اگه بخوایم اینا آمدن اینجا گیر کردن اون وقت رو بر این گذاشتن هر کمکی که داری از یه مشرکی هم میگیری از خدا داری میگیری از نوز به دایزن بدکاری هم داری کمک میگیری اون هم از کم داری از خدا میگیری داریش. پس فرق به این خوبت چیه؟ حسط قبعه عقلی یا یعنی تو معنی آیه نفهمیدن معنی آیه چیه؟ معنی آیه واضحه میگه ما تنها از تو کمک میکنیم. میگه ما تنها تو رو عبادت میکنیم تنها از تو کمک میخواییم اهدنا در هدایت تنها از تو کمک میخواییم ما رو هدایت کن اهدنا سراطن مستقیم خب چه تو انسان در هدایت نمیتونه؟ از غیر خدا کمک بگیره؟ بله این در است که هدایت به معنی ره بردن راه بردن نه راه نمایی راه نمایی از منو کمک میگیرین من از سمو کمک میگیرم آقا من راه نمایی کن چکار کنم چین کنی نکنم پیغمبر راه نما بوده ولی راه بردن نکلا تهدی من احببتا تو نمیتونی هدایت کنی هر کسی که دوست داری ولیکن الله یهدی من یه این هدایت تکوینیست یعنی ما در یاکن عبود و یکن اسم احدن اصلاحات به خورا چی میگیم؟ بیم ما تنها تو رو عبادت نکنیم و از کمک میخوایم راه راست رو به ما نشون بده یعنی یک کتاب جدید بپرسی یعنی پیغمبر تازه بیاد و راه راست رو نشون داده کتاب پرستاده یعنی ما رو به راه راست ببر قلب و روح ما رو بگیر که این راه رو طی کنیم بریم دنبال کسانی که نعمت پشون دادی انبیا اولیا ما اون راه اونا رو بریم اینو پیغمبرم نمیتونه منو وادار کنه لایک راه پدین خدا فقط بعد به من توفیق بده اینجاست که استعانت مخصوص خداوند میشه و این مانعی نداره که آسر میز بگیر من بکشم اینجا در هدایت تکوینی انحصاراً به خداوند نیاز داریم و کسی دیگه نمیتونه. نفس قرآنه میگه پیغمبر تو مردم رو دعوت میکنی نکل در تدعو الاسراتمون دعوت میکنی مردم رو ولی هدایت قلبی نمیتونی بکنی اینکه لا تهدی من احببت هر که دوست داری نمیتونی هدایت کنی ولی ها کن الله یهدی من یهدی آقا پیغمبر خیلی درش میخواست اما اوش هدایت بکنه همون ابو لحبو اگه میتونست تأثیر در نفوس بذاره یه ای میکرد اموه خازه میشد تبت یده آبی و تب نازل نمیشد اما هرچی گفت فارد نکرد رو که این توفیق از آن و قبول و تسلیم و بهش بده بنابراین اینا متوجه نشدن که در سوره حمد بعد از نستعین موضوعی که استعانت باید به اون تعلق بگیره چه است موضوع هدایت است. یعنی ما شب و روز نماز میخونیم نمیدیم خدا راه به ما نشون بده خدا ما که کتاب پرستدم هدن لناس نشون دادم دیگه بازی کتاب جدی میخوایم میگیم خدا ما رو ببر راه ببر لذا اونا که اهدنا رو ترجمه کردن ما رو به راه راست راه کن قلط راه بری کن یعنی دست ما رو بگیر به ما توفیق بده که این راه انبیا رو طی کنیم دنبال این راه بریم به کمال برسیم این خود انبیا نمیتونند ما رو این کار بکنن این اختصاص به خدا داره نص قرآن تو سوره قصاصه نکلا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء خب اینا متاسفانه مسائل دقیقی است که در کلام و تصوف و فلسفه و اینا همه مخلوط شده یا رو قرآن نکردن از این جهت یکی از جبر سر در یکی از نمیدونم نفی علت و معلول سر در این راه های قدرت ربتن پس اینا رو قرآن همه رو همه رو توضیح داده اگر اینا رو آیات رو به هم دیگه تفسیر میکردن همه رو این کتاب آمده این مشکلات حل کرده یک کتاب ساده دانستن رو خب ما به ثواب ببریم تعمل و تعقل درست نمیکنن تدبر نمیکنن گرفتاری های مختلف فکری پیدا میشه خب حالا این رو بگم آیا ما که میگیم که تنها از خداوند کمک میخواهیم و بعد بگیم خدایا ما رو به راه راستش رحبری کن دست ما رو بگیر ببر که این اختصاص به مقام تو داره در جاهای دیگه استعانت از خداوند نباید بکنیم در جاهای دیگه میتونیم از غیر کمک بگیریم این فقط در هدایت اینطوره جوابش این است که خداوند گاهی سائلی در اختیار ما گذاشته معنیش این است که من به شما اجازه دادم از این وسائل استفاده بکنیم آقا دکتر هست بیمار هستم میرم پیش دکتر داروی خداوند گذاشته در این عالم کش شده من دارو رو میخورم سردردم خوب میشه از کم که سر ما خورده دیگه حالا هرچی هست مثلا کارو زالم به فلان شخص مراجعه میکنم که کاردان کار منو اصلاح میکنه درست میکنه خدا نگفته درون از هم کمک نگیرید تعاونوا علل بر و تقوا و لا تعاونوا اسم اسن و یکدیگر در کارهای نیک در کارهای تقوا اینا رو کمک بکنید تعاون یعنی با هم دیگه کمک کردن و در کارهای بد یکدیگر کمک نکنید دیگری که کارو رو میخواد بکنی کمکش نکنی شما مسئول میشون پس خدا اجازه اونم از ماده تابان و از ماده اون نسته اصل ریشش همون اونه تو باب استفار رفته حال منظور من این است که خدا اجازه داده پس غیر از هدایت چیزهای دیگر رو میتونیم از همه بخوایم، نه یه جه های دیگم هست که اونجا هم فقط باید از خدا بخواهیم بر برهدایه یکی از اونجا وقتی که اسباب طبیقت میشه آقا دکترها گفتن مالی دیگه حال نمیتونیم بکنیم اینو عمل کردیم نمیشه درست نمیشه سراپاش رو سرطان گرفته از دست ما امن ام یجیب المزتر ازاده آه و یک پسو آیا کیست که مزتر رو اجابت بکنه و بدی رو برطرف کنه ایلا غیر الله آیا با خدا خدای دیگری هست که این کارو بکنه پس در موقع اضطرار وقتی که اسباب طبیعی قصد اسباب طبیعی هست خدا گفته آب بخور دارو بخور کمک از حسن و حسین بگید ولی وقتی که حسن و حسین و آب و نون و اینا همه تسلیم شدن گفتن کاری از دست ما خارجه اونجا دیگه یا ابوالفضل نجاتم بده قدرت چون اون الوهیت شده اما یا جوی بل مستر اض آه باید آیا کیست که مستر رو جواب بده زمانی که او رو میخواند. اد معله ادعای با خدا هست پس هر کسی در حال استرار و قطع اسباب افتادی تو دریات داری خفه میشی مثال میزنم یا مشکلات دیگه زندگی وقتی اسباب قطع شد؟ اگرم خدا به فض اجابتت نکنه سلاهت این باشه که بری مبهدانه رفتی نمشتکانه اما اونجا اگه بگی یا تقیه یا هر یا هرچین سرا بکنی کمکم کنی با شرک از دنیا رفتی الهت شده اون شخص الهان مالله آیا الهی با خدا هست که اونجا به دادشون برسه این شهن خدا هست فقط. خب این یه مورد دیگه غیر از هدایت در حال استران جاهای دیگه که ما از باید فقط خدا رو بخونیم اون جایی که یه کاری از خدا میخواهیم یه،, یه کاریست که مخصوص خداست مثل خلق فرزند مثل آمرزش خیلی کارهای دیگه خدا میگه که پس از این که اون کارا رو میشماره تو سور لغمان میگه می هازا خلق الله فعرونی مازا خلقل الذین من دونه این خلقت منه به من نشون بده این غیر من چی خلق کردم پس در مقام نعمت های اساسی خلقت که خدا بر اونها قدرت داره و او اینا رو ایجاد کرده اونجا هم نباید بگیم آقا امام زده به من بچه بده آقا منو تنین کن سادت من کن منو بخش قیامت من پران کن کار خداست حتی خدا میگه محاسبتتون با منه اینه الینا ایابکم سن من اینه الینا حسابکم حسابتون بر منه بازگشتون با منه سعادتون در دست منه خلقتتون با دست منه توسع رزقتون با منه و همیتر خیلی دا که مخصوص خداست از کنم که اونجاست که در اونجاها هم غیر خدا رو نباد خواهند. ولی وقتی که اموری هست که خدا اسبابی در از کانم اختیار ما گذاشته لازم نیست خدا حرف بزنه بگه آقا من این آب رو گذاشتم تو تشنه شدی بخوری من این گنلم رو گذاشتم که نان کنی گرسنه شدی بخوری نه خدا دو جور حرف میزنه خواجه چون بیلی به دست بندزاد داد بی زبان معلوم شد او را مراد وقتی که اون آقا به نوکرش یه بیل دستش داد زمین نشون داد یعنی بیل بزنید زمین رو یه لازم حرف بزنه مشهور میگن که سقرات عده ای از شاگرداش درست بودن گفتن این خداهایی که تو میگی سقرات از مین فلاسفه یونان خیلی مدر مبهر بزرگی بوده من آثارش رو مطالع کردم بعد گفتن که این خداهایی که تو میگی چرا با ما حرف نمیزنه؟ میزنه گفت حرف جو جوره خدا وقتی زن و رو در برابر هم گذاشته یعنی ازدواج کنند تا تکسیر دست بشه گرسنگی به تو داده انوا و میوه ها و صددی ها و فران و گذاشته یعنی کلو وش تاقیان نکنین ولا تص بود بخ حرف زده شما شما حرف فقط صدا میدونین هر تکمینی اشارات خداوند در عالم اینا حرف زدن خداست. خدا تو طبیعت این همه با شما حرف زده بله و از طریق انبیاء هم با شما حرف زده حواستون چرا پرته ببین اون پیرمردی که گفتن جام شوکرانو بعد بخوری و بمیری و خودکشی بکنی و پلان در لحظه های آخره چجور درست توحید به شما داده بله نگاه کنی خدا با شما خدا تعالی هم تقریبا همین میگه میونا گفتن چرا آیاتی نیست قد بينا لكم الآیات لقوم يعقلون شایتی میخوان ما آیات روشن گذاشتیم بر وجود خودمون برای مردمی که عقلشون رو به کار بندازن آره هر جا گرم جلوگه شاهد غیبی او را نتوان گو کجا هست و کجا نیست مال عبرت لاینی چون نور که از شمس جدا هست و جدا نیست آلم همه آیات خدا هست و خدا نیست هر گرم جلوگه شاهد است. او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست در آینه بینید اگر صورت خود را آن صورت آینه شما هست و شما نیست این عالم مثل ای ذات اقدس خدا رو حکمتشو قدرتشو انعاویتشو رحمتشو نشان میده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته